سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز به نام الله که بخشایند و با رحمت است آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است تسبیح خداوند است بدانید او قدرتمند و حکیم است ای اهل ایمان چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید؟ این نزد خداوند گناه بزرگی است که چیزی را بگویید و به آن عمل نکنید خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی که چون صدی آهنینند و میجنگند دوست دارد به یاد هنگامی که موسی به قومش گفت ای قوم من چرا مرا آزار میدهید در که خوب می دانید من پیامبر خدا بر شما هستم پس هنگامی که از حق منحرف شدند خدا نیز دلهایشان را از حق محروم کرد زیرا خداوند زشکاران بدسیرت را هدایت نمی کند و یادار هنگامی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من پیامبر خدا بر شما هستم توراتی را که پیش از من آمده تأیید می کنم و شما را به پیامبری بشارت می‌دهم که بعد از من می‌آید. نام او احمد است. و چون آن پیامبر با دلایل روشنگر آمد، گفتند این جادویی آشکار است. چه کسی ظالمتر از کسی است که بر خدا دروغ می‌بندد؟ در حالی که او را به تسلیم شدن در برابر حق دعوت می‌کند. بدانید که خداوند ظالمان را هدایت نمی‌کند. آنها می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند حال که خداوند کامل کننده نور حقیقی است هرچند کافران از آن کراهت داشته باشند او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی دین چیره باشد هرچند مشرکان کراهت داشته باشند ای ایمان آیا میخواهید شما را به تجارتی سودمند راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات بخشد بالله فی ذلکم به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد نمایید که اگر بفهمید اینها برای شما از هر چیز دیگری بهتر است خداوند گناهانتان را میآمرزد و شما را به بهشتهایی که نهرها در آن جاری است در خانه های پاکیزه و مملو و از آرامش وارد می کنن. آن هم در بهشت های جاودانی بدانی که این پیروزی بزرگ است. و نعمت دیگری که دوستش می نصرتی الهی است و پیروزی نزدیک اهل ایمان را مجدده. ای اهل ایمان یاران خدا باشید همچنان که ایسابن مریم به هباریون گفت چه کسانی یاوران من در راه خدایند هواریون گفتند ما یاران خداییم سرانجام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی دیگر کفر ورزیدند ما نیز کسانی را که ایمان آوردند بر ضد دشمنانشان یاری کردیم تا پیروز شدند <تصفيق> قال عيسى بن مويمل الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فَإِن يَدْنَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى صدق خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و